با من نکردی عزیز من گوش کن خود دارم بهت میگم دیگه ببین آقا پیشبان به من گفت که باباشو ببرم برستونم هم خیلی عجله داشت خب من میگفتی خب فکرم تو شنیدی حرفامونو حالا الان شما رسیدی خونه من که راحت بشه بله رسیدم تو کجایی من یه جاییم بهت بگم بابره بمشه ای بگو اما خودتو لوس نکن ببین مدم اومدم یه خونه دیدم خیلی خوبه برای فردا پس فردا اگه بشه قرار میزنیم برای قرار میت. تو مگه خونه نداری؟ چه مجردیه کچی که اصلا مناسب شما نیست میخونی دو خوابه خوبه برخوابت آینم بکنی بچه اه. باشه فردا میمیدم باشه خدا بس این از این کبودی زیر چشمت این از این خالی بندیایی که برای این دختر خانم میکردی طرف رو زردی بلاخره هم میرا؟ خودشو نه سرکاریش اما این نشه پای منم گیره ها داری با ماشین من میری داری راحت دیگه بچه میگی تو ندید چی شده این وقت شد؟ تو میدونستی سه قبل از باش کرده کی؟ رونا نه واسو جو نمیرستم حتی یک کلام هم به من نگفت شاید منتظر فرصت مناسب بودی که بهت بگه شاید آدم اصلا نمیخواسته بگه تو هست کجا فهمیدی؟ شوهر سابرش به این میگفت خب جواهش بهش بگو خودش باید بهم میگفت آقا خودش حالا به هر دلیلی نخواسته که بگیم اخواهی چیکار کنی؟ صادم من زندگی زندگیمو میکردم برای چیونو گذاشتی سر راه من حالا داری دنبال مقصر میگردیم برای من شما برای کار دنبال سرمایه گذار میکشتیم من برای پیدا کردم حالا نمیخوای بکش کنار ولی این راهش نیست. راهش چیه؟ ها؟ راهش اینی که درست بشینی حرف بزنی باش و ازش بپرسی چرا نگفته. شاید دلیل منطقی داشته باشه برای. هر دلیلی که داشته باشه برای من منطقی نیست. من نباید از زبون شوهر سابقش می‌شنیدم. راش این سوال ازت بپرسم. الان مشکلت چیه؟ مشکلت اینه که چرا رونا استباش کرده یا مشکلت اینه که چرا خودش نگفته؟ نمیدونم یعنی نمیدونی که هستت نصد بهش چیه صادق. من آشارشم هنوزم آشارشم دیگه اگه آشارشی بگزر نمیتونم پس اون کار چی میشه اگه اون کار از دست بدید همه ی زحمت های همه سالت باد میره آ. اومدی. نباشه امروز خیلی اذیت شد اینا. پاتون بهتره؟ الحمدلله، شکر خدا. سامان راحت اینجا رو پیدا کرد؟ آره بابا جون، وقت پیشم. چه جوون خوبیه، خوش اومد. بعد بیشتر هواشو داشته باشی. شما بفرمایید که بالاخره کیو من پسند کردید؟ اول باز بریم دو دست کد شلوار بخریم بعد بهت میگم اول شما بفرمایید کیو نشون کردیم؟ <تصفيق> بعدش من یه زمان قدیمی که زن و شوهر هم دیگر سر عقل ببینن اتفاقا زمان قدیم خیلی خوب بود آره اصالاً بهتر بود پدر و مادر دست دو تا جوونو تو دست هم و صلوات بله هر و هم نداشت اتفاقا پیوانداشون محکمتارم میشد بله چایی که میخوری؟ اگه بهم بدن میخورم اگرم ندن که شکر خدا رو بکن خاصم آقا چه نقشه ای من کشیدی؟ هیچ ها نقشه ای بابا جام میخوام یک کار نتموم و تمومش بکنم تو قدیما به من دروغ نمیگفتی جو. چرا به دروغ گفتی که ستاره شوهر کرده شوهر کرده دیگه بازم داری دروغ میگی. رفتم پیشش تو هتل کار میکنه اونجا داخلیه. چجوری پیداش کرده؟ ادرسش از کاهرت فونه گرفته. من که میدونم ما با این کارا رو به خاطر من میکنی. ولی نکن. تو پدر نیستی تو بفهمی من چه عذابی میکشم. یه پسر 40 ساله بدون زن، بدون بچه، بدون سر و سامون این کارا رو بابا نکو یه وقتی دی که ساکمو برداشتن. آتش خالهمو رو رخصت توش و برای همیشه رفتم سالمندان. خداحافظ. چیم میگفت تو از رابطه با تو ازش فرسیده هم سکوت کرد سکوتم که علامت رزاست فهمیدم که هنوز دوست داره صرف نشدن اما حقیقتا نگرانم ترس این مساعد شخصی وارد کار بشو و همشه تحت شها قرار بده ترس نداره من سال‌هاست دارم تلاش می‌کنم که کار بزرگ انجام بده الان شرایطش برام فراهم شده نمیخوامد دستش بده من شناختی از شما ندارم ولی خب معمولاً رونا هم بی خودی از کسی تعریف نمی کنه شک ندارم که خیلی بااستعداد با انگیزه ای، خیلی وقت واسه این اپگوزش. ولی موضوع اینه که خب من بخوام بیام پای اون کار باید از این شرکت بیام بیرون. اینجا عملیات شغلی دارم حالا با اختلاف نظر رو حلیده. نمیگم ایدآل منه ولی خب ریسکی توش نیست. اونجا چی؟ چه تضمینی که هیچ مشکلی توش به وجود نیاد؟ می‌تونیم یه چارتی بکشیم و رو توش تعیین کنیم. شاید اولین چیزی که لازم باشه بدونی ایندینه که شما مدیر شرکت باشید. حساب شرکت به اسم شما باشه. این که نمیشه چون که حساب شرکت باید به نام شرکا باشه. از شراکت نمیتونم صرف نظر کنم چون این تنها که زندگی موزیرو رو, رو میکنه. من منظورم نیست نگفتم صرف نظر کن گفتم حساب شرکت باید به نام شرکا باشه در زم بحث مدیر عاملی هم به همین سادگی نیست. شاید رونا بخواد مدیر بشه. صدای شرکتیه که شما باشید. تو مسئلات شرکت از هر چیزی مهمتره. میتونیم بریم پیشه وکیل و کارها رو محکم کاری کنیم من میخوام به شما اتمینام بدم که به سرانجام رسیدن این پروژه برای من خیلی مهمه. میدونی که من با هفتاد سال مدیر عامل باشم دیگه تقریبا اختیار کامل شرکت نست منه بله میدونم آقا رشون من آدم سخت گیری هستم تو کار با هیچ کس شوخی ندارم حتی خوهرم برای همین عرض کردم خدمتون بریم پیش ی وکیل و چارچوب به وظیفمون رو تعیین کنیم محفظم آه،, آه یه چیز دیگه حتما میدونید که من با موتور کار میکنم اه؟, اه؟ به دلایلی مجبور بودم که این کار انتخاب کنم تصمیم دارم از زمانی که شرکت تأسیس شد دیگه این کار رو بزارم کنار که صد درصدم فقط توی شرکت باشه برای همین احتیاج به حقوق ماهیانه دارم جدا از سود باشه. پس سرعت نمیتونه زیاد بالا باشه. در حدی که جای کار با موتور بگیره که فایده میکنه بیشتر نمیخوا عله. پس من کارو از همین امروز شروع میکنم. عله. خیلی ممنون. چطورین اخو؟ اول من خوبم. خدا خداحافظ. بله. سلام. چطوری؟ خوبم ممنون. چرا زنین زدم جواب ندهدی؟ جایی بودم. نمیتونستم صحبت کنم هانتی شبام یهو خاموش شدی کلی پیام دادم خسته بودم. خوابم بودم علی برنامه چیه؟ چطور؟ بیم کافه همه هم اسمایی صبونه خوردم نمون. چیزی شده آرش؟ نه خب فکر میکنم به راه نیستی اصلا بودو بودو دارم باشم ما مزمن نمیشه قربانت قدفز قدفز آقای بهمی بله من میتونم چندسه باتون صحبت کنم اینجا خیلی وقتتون نمیگم شما من کارگر پیوان شریفی هست تو رو فرستاده یه پولی به من بدی بکشم کنار پشمان از این اخلاقا نداشت. هنوزم نداره. اصلا بالا چیه؟ پشمان دنبال چیزی نیست. تو دنبال چی؟ شما فکر کن دنبال خير. باشه. من میتونم قیمتی که میخواد تو مزایده اعلام کنه بهتون بگم. تلاویز چی؟ اونجا که صاحب شدین من بشم همه کدش خیلی زرنگی بخواه یه قیمت علکی اعلام بکنی و پیشمان بالاتر بزن و برنده شد تمام من خودم ختم روزگاه این شماره من نه نظرتون روز شد داریم بزن سلام سلام. دیروز اومدم. ببخشید، خانم ستاره رفی رو کجا میتونم ببینم؟ میتونم ازشون بپرسم؟ من که آشناشون هستم. انتهای راه رو سمت چپ، اتاق مدیریت. خیر. بودم تو عفته بودی نه؟ چی قاعدتا قایداتاً از گذشته ها حرف بزنی این از تماسی که پدرت با ام گرفت میزنم نمیدونم اما درسته یا نه؟ کی ایمون تهران؟ دو سال پیش اینجا هم تازه عفته شده نه؟ همونه ای که میخواسته داری رو دوست دارم البته خب کیش برام خیلی بهتر بود خب چطور برگشتی؟ به خاطر مامان بابا بچه ها رفتن من که ترجیح دادم پیش اونا بمونه. قادرشان خوبه؟ سنشون رفته بالا یه روز نوبت چکاپ باباست یه روز چکاپ مامان کلن هفته ای نیست که توی بیمارستان و دکتران نباشیم الان دیگه همه درگیر همین مسائله پدرت چطورن؟ خوب فیلم میتونی کارش رو انجام بده بازم خدا رو شکر خودت چطوری؟ عشقل ماهی سرا؟ آره دیگه یه نقشه هایی هم براش دارم از وقتی من یادمه تو برای اونجا یه نقشه هایی داری دید تنها کاری که عاشق بسم نمیخوای حرفتو بزنی؟ بر سنی باشه باز گفتنش سخته الان احساس میکنی سنت خیلی رفته بالا آره نگیرگی سی سالم که نیست چند روز دیگه میشه چل سالم چهر روز دیگه یادته ولی مطمئنم تو مال من یادت نیست بیستو یکی بهمه من کمکت کنم پدرت میخواد که تو با من ازدواج کنی نه فقط اون نمیخواد ولی اون اومد دیدنه بره. چون من بهش گفتم تو ازدواج کردی خب. میدونست که من هنوز بهت علاقه دارم این تا ازم میگرفت گفت که بیام پیشت که تو نمی‌خواستی. از چرا اومدی ؟ میخواستم ستر بعد شرایطم سخت بود نمیخواستم تو رو درگیر کنم میرین که پونه هم در جریانم من مسئولیت نگهداری بابا رو دارم نمیخوام منش پرستار بگیرم به جایی هم نمیخوام بسپارمش خب خودم تا آخرام ازش نگهداری کنم کار خوبی میکنی برای همین نمیدونستم اگه بیام جلو این شرایط رو باید بگم با چه جوابی رو برو میشم اگر احساس من هیچ نکرده این حرف رو چند سال بیشم برمزدی وقتی من داشتم میرفتم کیش گفتی که شرایط هنوز جور نیست اون موقعا باید از بابا نگه داری میکردم ولی اون موقع پونه بود ها پونه داشت ازدواج میکرد مخواست برای اصفاهان نمیتونستم روش حساب کنم حالا دیگه گذشته ها گذشته بلش کنیم بله داریخان. با باید باید بایدیم الان مخواهیمش کار کنیم الان ما چی بگم خود میترسیدم و سمی تردید داشتم بیام به قول خودت دیگه سر نمون رفته بالا من هم احتیاج به زمان دارم که فکر کنم کجاست؟ نیستن. کجا رفته؟ چیزی نگفتن. ظمنن یه آقایی اومدن تو اتاق با شما کار دارن. کی؟ همون آقایی که اون دفعه با دعوا بیرونشون نشون کردین. بفر. الو رامی معلوم است کجایی؟ قرار بود امروز بری کارخونه. <تشق> <ممارو بزن>. سفارش های شرکت پارمیز ارسال نشد تو باید پیگیر بشی من باشه باشه بعدا به این بگوی خدا حافظ خدا حافظ. سلام. اومدی اگه نگفتم دیگه اینجا پیداد نشه چرا گفتیم هر حرف دیگه هم از دهنتون درمود رو امزدیم اگه لازم باشه باز هم میگم اون دفعه بهتون گفتم من دیگه اون آدم آس و پاسه سابق نیستم اون موقع حق داشتیم نگرم خوشبختی دخترتون باشید ولی الان تمام شرایط لازم برای تمنی زندگی خوب من دارم یه چه فرقی می من اشتباه رو دوباره تکرار نمیدونم. آ نذایی توی این چند سال من همه یه تلاش ما کردم همون آدمی بشم که شما میخواستی. آدمی که در خور خاانواده شما باشه. در خور زندگی کردم با دخترتون باشه. دی اوتی. یعنی شما این پسریمون موتوری یا آ به من ترجیح میدی. هرچی باشه من شوهر عقدش بودم بیتونیم برگردیم من کلی کار کردم تلاش کردم تا به اینجا رسیدم حالا من یه وارد کننده مواد اولیه هستم از همین الانم اگه دیگه کار نکنم اون بد دارم که دخترتون تا آخر عمرش درمی نمیشه باشو و اندازه کافی اون هم با اعصاب و روان ما بازی کردیم دوستش داشتم هنوز هم دوستش دارم که بعد از چهار سال برگشتم من نذاری من توی خونه شما رفته اومد داشتم نورانمکتون رو خوردم شما یه روزی به من اعتماد کردی منو به عنوان پسرتون قبول کردی تو میخوام یه بردیگه کار رو اصلا شاید الان نتونید تصمیم بگیرید. این کارت منه تلفن و آدرس اگه خواستین میتونید تحقیق کنید ببینید راست گفتم یا من. بابا دیدم آره حسابی زد تو پرم من از هم شمید رسمیتوری برخورد کنی مطمئن بودم ولی ببین حکس پسر موتور سواره بکیدید حسابی جا خورد نه بابا روحشم خبر نداشت آره من مطمئنم که رونا رو نمیده به این حسار. از همین که عاشق دخترتون هم این مزق رفات فارد شدن نیده تنها راهش هم خیلی خوب ببینیم چیشه خیلی نه خیلی آدم پیگیریه من ست سال ویژان کاری رو ندارم به این مره پیگیری بایش یجور دن به دن خیلی دار بذاره جب نده بابو با با با کریم این تازه اول کارش بس خودش اینجا لابا پیشمان داریم کارار میکنه چهار دیگه هم با امینه تو اصلا باشی اینجا نشستی کجا باید بشینم نگهت من باید بشینی نگهت من باید باشتم بول بل زبونی میکنی برو به کارات برسی برو بچه با کم باشو امادیم یه چایی بخوریم و سهر دمارمون کردی برو ارے ساری چون اینا همه علکیه همهش واسه اینکه اینو فکر کنم کلی کار ریخته سر من واسه اینکه فکر کنم من دارم با ماهی سر سرا صحبت میکنم جرأت نکنه کسی بیاد سمت من الیشون کون بابا نه ناتا تو چه چیو میخوری؟ چون نوبت تو کی فای میفهمم ببینیم وای به خدا خیلی کار دارم یه چند دقیقه دیگه میام چند دقیقه دیگه خواهش میکنم اذر من دیونه وظیرا میارم و می‌توارم تو بوزا دادا هوا شما می‌دازم اینجا مربه کارت داره کار من توی بابا همه زندگی من توی بیا. کار دارم چه که در پنجره شدی؟ شدی؟ دیگه داری نکن بیاد دیگه سامان خیلی کار دارم بابا بیا در پنجره داره سامان بیا بیا چتری شادی گوشکو جدی من انصافا میگم دوست دارم و این شعر مال توه مثل اکسیژنی که میکشم تو دیگه ها نه هیچ گوش گوشکو بس فقط من بس فقط من بگم عاشقتا بزن من بگم تو ست دارم شادی سامان بی تو تنهاست شادی بذیشنا شادی حالا میام سمتت شادی افسلی گوشی داره زنگ میخوره من با شما تماس می‌گیرم بازیشم خوبه دو تا تا داره جزا چی میگفت؟ که دو تو پیشی داره؟ نمیدونم من نفهمیدم، دارم جعفر چه افرمم بینیم با تلفونت با من حرف میزنی کارتو نمیکنی آقا پشمان ببینی شاکی میشه سامان تناس سامان امرستن <تصفح> <تصفح> نهیدارد خیلی دارم مرتعی شده بود اصری با هم برمیکردیم دیگه امرستن تو اتاقت نهیمدی بیرون نمی‌برم اون خانه هه. اول یه کنارتنه فهم کنه یه مواد دیگر نداری. من چجوریم؟ من درم خیلی زود تر میشه. خیلی خوب. میگم این خونه که دیدی کجاست؟ یوسف وقت. چه خوب؟ نه من شو بعد نمیبرم کی قرار داشتیم بندی؟ قرار داشتیم تو همین هفته میتونم کارشو بکنم. علی شاد نگرانم نگران کارم کوله پشتم آماده استو میترسم اگه اینجا از دست پژمان خوند در بیارن بعد اون که میاد جاشمو رو نخواد چیکار بکنیم وسیله ی رو حقوق اینجا خیلی حساب کرد خودش که خیلی مطمئنه کسی رو دستش بلند نمیشه شا. ما هم نفر نگران باشیم میشد برم همین یکی دو روز قرد ببندم یه خوب خیلی هم دست, دست کنی یکی نید خونه رو بگیره نه اونا دیگه اینجوری هم نیست تکریف اینجا تا هفته دیگه مشخص میشه دیگه نه امروز قرار پرونده ها رو بهم بده من فردا برم اداره خیلی طول نمیکشه خیلی خوب من برام بالا تا من قبلی من زنی نزدم اصلا پرت شادی. چادی مسج می‌خواهش الان باقم؟ باقم هجیت سب کن نگه به جون تو با خراشه باشه باشی بابا خیالتو هم خدافزی یه دفعه من دور نذاشتیم برو فیبراجه داستان یاستان احتمالا می‌تونیم با همه کامپیوتر را کار کنیم فقط باید سرور بگیریم الان کلی پول همونه کلار نبود به چرا؟ بابا هم زنگزت شاکی بود نگفتی بهش؟ افیلن میدونی که قشقی رای بپام میکنه خب بالاخره که چی؟ اونتا یکم اینجا راه بیافته اش میگم من نمیدونم چی شد تو از نظرت برگشت اگه نمیدونی؟ چیو آراش اومد شرکت باب پیش ما که؟ امروز صبح چی؟ خود مدیر عامل من باشم و بریم دفتر و قرارداد و محکم کاری و اینا. بذار گفته بود؟ نه. فکر کردم میدونی. کار ساختیه؟ نه کار این باره اشتباه باره چهارم هم مجبورم دوباره یکی دیگه باشه اما بله چشم هم میتونه آقای جواب برز باشه یه لحظ. دوباره یه دیگه انجامش بده برش سر سخت نمیگیریش؟ بهش وقتی گفته کارشو بلده پس پت کارشو درست انجام بده دیگه باشه با بیکم زمان بده شما اجازه بده این مساعدو من حل کنن عازم یه وقت خالی امروز بزاره بشیم، شهر وظیفه‌مون رو دربیاریم تا ببینیم هر کدوم اون تو چه حوزه ای فعالیت کنیم. بله. شنیدم امروز به خاطر اشراقی پیش رامین. کار شوخی نداره. موقعی که زنگ زدم گفتی تو جلسه ای رامین بودی؟ جلسه بود دیگه. چطور به من نگفتی میری پیشش؟ یهو بزندم رسید. یه دفعه که نرفتم. بعدش هم گفتم بریم پیشم اسماعیل گفتی کار دارم. گفتم مغازه دوستان کامپیوتراشه. قراره با هم بریم؟ کارش اتفاقی افتاده؟ نه چه اتفاقی؟ نمیدونم دیشترم یه او جواب ندادی گفتم بهت که خسته بودم خوابم برد باز میکنم سلام سلام مگران نبود کار خونه باشی؟ ام. رونا کاری کار دشماهدم بهش سر بزنم چند روزه نرفتی کار خونه بارا همینجور مونده رو زمین ها کارا که بعدیفه به, به جوادی گفتم بفرسه جوادی که دست رو این کار رو نداره خودت نباشی همه چی لنگ میزنم دوستات کار بانکی دارم اونا رو انجام بدم الان بس بسلام دارم. میرم کار کنیم شما رو رو میداخلیم سریع برگرم چش مادرت میگفت و سکه ها تو میخوایی؟ بله لازم اشون دارم برای چی؟ دارم یک کار جدید شروع میکنم چی هست سفایش های و کارهای مجازی یه برنامه ای درباره اجاره خونه و ویلا و یعنی اونقدر پول میخواد که باید طبعاتو بفروشی سرمایه اولیش باید جور بشه دیگه از کجا به این کار رسیدی یکی به پیشنهاد پیش داد چی؟ آیدا جواب مردی پدرم هستم آقا سلام هست سلام فرشه جواب مردی هست سلام باشین برنامه روشون نوشتن تو دانشگاه کلاسیم عموتات البته درسمو تموم نکردم الان اینجا دقیقاً شما میخواین چیکار کنین ما داریم سیستما رو ارتقا میدیم و برنامه رو بارگذاری کنیم تا ان کار شروع بشه خب بالا مطمئن این کاری که میخواین شروع کنین نتیجه میده بله من چند سال روی مردم کار کردم مطمئناً شما سرمایه میارین. من برنامه‌را نوشتم خلاصو باش رıza چرا بیم این پسر اعتماد خیلی کارش چیه برنامه نویسی. این چه برنامه نویسیه که با موتور کار میکنه؟ شرکت دیدمش را افتاره دنبال ماها مهم نیست کار کیه واقعا این نه را نزدین تو صورتش اجازه ده میاد رجوع من حرف بزنه رونا بابا چند میشه داره به منزهی میزنه موضوع من میشه من پیش گفتم ایر پی کارش امید سرخ شما من اجازه ندادم حرفی بزنه ردش کردم رفت اوزو چیز دیگه است الان میخوام بدونم این پسر آرش جوان مردی کیه شریک کاری من. نه یه انگل مفخور مثل کامیار. چرا تو سرمایهشو میدی؟ حالا که روحوانیست که بابا حساب کتاب داره. مطمئنی حساب کتاب داره. یعنی yani چی؟ یعنی yani فقط رابطه کاری داریم. دست راست منه شو چه حقی منو تحقیر اما تو خونین کسی ویدیو اکسدور رودیوار ببینن که جای من چه فکری خیلی برات مهمه که قبل نرفتی کردی. می‌خواد همه طلاها و سکه‌هاشو بفروشه بده روی این کسره. همونی که دانشگاه دوستش داشتی؟ مجبورم اون فکر این کار انجام یه چیزی باز منو مخفی نمی‌کنه. یعنی ممکنه دیگه نتونه راه بیاره. تو یا تاریکی یا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 مهربونی بونی ایش نزنی نی ایش آخرین دیگه این جورچینی نی ایش مهربونی بونی ایش نزنی نی ایش آخرین دیگه این جورچینی نی ایش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 من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش آقای خدافزی یه تپش از قلبم مثل پروان نشست روی سنجاق سرش مهرابونی ایش نازنینی ایش آخرین تیکه یین جور چینی ایش ایش نازنینی ایش آخرین